شنیدم که باغ ارم آنقدر زیباست که انسان را به یاد بهشت می اندازد بله. در شعرها و متون زیادی درباره این باغ سخن گفته شده است. این باغ قدیمی کی ساخته شده است؟ دقیقا مشخص نیست. اما از حدود 800 سال پیش باغ ارم در شیراز وجود داشته است. پس خیلی قدیمی است. اکنون از این باغ و امارات زیبا چه استفاده ای می شود؟ اینجا الان متعلق به دانشگاه شیراز است و یک باغ گیاهشناسی محسوب می شود. گیاهان بسیار متنوعی در اینجا به چشم میخورد چه عمارت زیبایی و چه حوز بزرگی؟ وجود حوزه در جلوی امارت از نشانه های ایرانی است این ساختمان سه طبقه دارد اون نقاشی های بزرگ بالای امارت را می بینی